global entertainment با افتخار تقدیم میکند یه موشک بازی آها. کنی؟ آره خیلی دوست دارم خب ما قایم میشیم تو بیا پیدا من کن باشه بابایی نه نه من الان مثلا بابایت نیستم من یه مایی خوبم که میخواد دوستت باشه قبوله؟ بابایی دوستم من قایم شدم حالا بشمور تا ما قایم شیم ده نو چهر سی و پچ چهر من از این شنو خوشم یاد خیلی نرمد مامان مامی امو شو باش گوری دوری دوری دوری مادر رو واسه کجا میری مامان جان ویدیت باش نباید بری سمته جریانتون دختر گلمو شر که بهت گفتم یادت, یادت میاد وقتی که دیدیم جریان توندو میگیم بزن برو نه نه میگیم زودی دور شو آه. خب آماده شو یه بار دیگه وقتی که دیدیم جریان توندو میگیم جریان تو جریان تو جریان تو اگه یادتو خلاق قشقله بالا کن. او کوشینم ولی. آه. پوستت یادم نه؟ هیچ شب شکلی نداره. آره، شو پولی بو پولی. اگه شما رو یادم بره چطور؟ شما منو یادتون ناره؟ نه بابا هیچ وقت تو رو از یاد نمی بریم دخترکم. مطمئنیم تو هم مرا از یاد نمی برید. گلوبال انترتیمند با افتخار تقدیم می کند سرپرستی صدا بازیگران محمد رزا علی مردانی در جستجوی دوری چیا شنیدن؟ همین دیگه علا یکی گفت کمک خوب من که چیزی ناشیده برو بابا تو هم میگم یکی گفت کمک همین دوره برا هم بود Yine kim ben mi binim hemeshun lalmahi yani hiç kimse ne bir şey koftece komak bi o naha o naha kul koca o naha o naha o naha diye ki onjans aha onu mi gi o bere ne kadar nazm mert unvar koca kimi ne var ne herci mişnemi khodso minazi vasat chi şuda azizam mesela ben doliyim miş komakam koli hey azizam azin taraf omdi gomsudiy val neret belkerede yi dadnimiyot eyfo dadin aniga ببین ننه بابا لای اینا نیستن. بشه میشونه شونه هم نیه. سالو من تو اریام میشه کمکم کنین؟ عزیزم همین چله بیچ همینا گفته بودی که راست میگی. خیلی بد اخشی. من اختلال, مدت دارم. اختلال و حافظه ی کوچا متعدده آخیش ابن اختلال حافظه حالا علی همینجا سبگو ما الان برمیگردیم بیا اینجا ببینم بیا آه. آه. چرا لانی میگیری یه کاری بکن دیگه کمکش کن چیکار کنم مگه دکترم کمکش کنه کمکش کنه آدمو در ودی میت کنه حالا خیلی پررو شدی چتا از فسی میه بیان برمیه حالا من یه چیزی گفتم توری جان بفرمایی گوری گوری گوری سالو من تویی من خونه و دامو کم کردن بیشو کما کم کنیم من دوریم من اختلو لحفظه کدا اوی شنو کندو شنو کندو شنو کندو شنو من خونه و دامو کردم کمکم میکنین آخر این بار کجا دیدیشو خب با... م... میدونم خنده تره ولی یادم نمیاد آخه طفلی خب بیا با ما زندگی کن مامان شما خیلی مهربونین ولی من دارم دنبال دموله... یکی میگردم که خب نمیدونم چی بود ولی به هر حال ازتون ممنونم وای هیچ یادم نمیاد هیچ یادم نمیاد سلام ما دریام خیلی دفعه, دفعه ترسیدونم اتو اون من که کوسه نهنگ نیستم سلام من داریم دارم دنبالی یه چیزی میگردم آفایمی در سرتون شلوقه خوش بکسره همه مشکل دارن نرست میشه خوش بخشی به همچنی شما حالا نمیدنی دنبالی چی میگردم متاسف متاسف متاسفم خدا متاسف. حفظ متاسف. دفعه بعد شاید با هم رفتیم گردش غریبی در کنین شاید با هم غریبا قایق سفیده پسرامو برد قایق سفیده پسرامو برد کمک کنید خواهش می کنم خواهش می کنم ای بابا بچت ی هواله حالت خوبه بچه‌ها بردم بچم کوچیک بچم کوچیک سرش شدم بعد بغش شدم بچه‌مو دوزیدم بچه‌مو بردم بچه‌م کو من بچه‌مو میخوام اون قایق سفیده کجاست من بچه‌مو تو قایق سفیده دیدی آره من دو بلاب یا این بری رفتین مرسی خیلی ازت ممنونم خیلی من دوری, دوری هستم دارم دنباله یا چیزی میگردم اون آچه رو بده اینجار رو درست کنم من در دوری هستم دارم دنباله یا چیزی میگردم ایم کلم والین کوشی اچه ها داشتم یه خوابی میدید ایم دوری الان وقت نمیدر شدن نیست مارو بگی تو تختت بخواب های چیزی هم خراب نیست که درست نشانیه بخشی شش برای میخوابم میخوابم میخوابم ببین ما میخوابم برگرد تو تختت بگی بخواب بدرم درمار بیرم نه خواستیم خواب, خواب به ما نیماده چون ما رو باشه بباشه صحب ما شروع شد بریم واحا با دو بار چی می‌گشتی؟ ممو درسته یادیشو خیر این گرامیدیروز میت. حالا تازه خودی دیروزم یادم نمیاد. من اونجا سفر خیلی ترسیدم که گیر اون 4 تا کوسه افتادی. ای بابا مگه سه تا نبودن؟ نه عزیز من مطمئنم 4 تا بودن. ولی دفعه آخر گفتی سه تا بودن. بچه‌شون کدومون کله اقیانوسو پش سرگذشته؟ ممو دیگه؟ مم؟ اقیانوسو پش سرگذشتین چط پیداش کنیم؟ باز اونم فر رفته. بله پر بیرام نمیگه خب به موقع رسیدین پیش به سویی یه سفر حیجننگیز سفر حیجننگیز ام... خیلی حیجه دسترم کجا میریم؟ بهش نگفتی چرا بابا گفتم؟ ببین دوری چیا؟ راستشو بخوای آقای ری امروز باید مراقب کلی بچه قد و نمقد باشه متوجه ای که چی میگم خب بس به نظر من بهتری امروز رو با آشون نریم بمونی پیژاما خب چرا درام تو خیلی چه جوری بهت بگم تو بعضی وقتا این چیزا یادت میره <تصحیح> همی که یادم میره رم یادم میره آره درسته ولی اصلا تقصیر تو نیستا اصلا تقصیر تو نیست ولی ممکن یکم گیج‌بازی در بیاری آخه ری به دردسر بیفته درست میگم؟ درسته این طفلکی هم کسی نداره که کمکش کنه. طفلک بیچاره کارش خیلی زیاده هیفنکی. درسته؟, درسته؟ اصلاً فهمیدم چی میگه. آره؟ خب ازت خواسته بهم به بگی برم دست یارش بشم. نه نه نه اینو نخواسته که. نکن باعث افتخارم اخیراً هم چیکاری نکرده بودم. برادر ری تحویل بگیر. بودم فکر این را خب <تصریق> بچه ها بلاخره وقتی شد میخواییم بریم از نزدیک مهاجرت صفر ماهی آر را ببینیم ببینم کسی میدونه ما که را مهاجرت نیکنیم زود بشیم هرچی ولدین رو کنیم مهاجرت عبارت هست از برگشتن به <تصفر> تخت خبر نم زیبه شیم ما جرات برگشتن به خونه است یعنی جایی که ازش اومدین این که ازش اومدین کسی میدونه از کجا اومده این که از جایی که زخمه بزرگ از صورای مرجانی خونه ما سر کله لجرده واس کجا اومدی تو ها ام... نه میدونم خونه بود ها اون کجا سلام کوچولو. سلام شی دوست شیارا. من دوچاره یه جور اختلال حافظه کوچیکم دارم. اگه چیزی یادا نیست مثلا چطور یاد داده خانواده داشتی؟ عفواً پسرام سوال خوبیه. من یه چیزایی یادمه چون که واضحاً مثلا حتما یه خانواده‌ای داشتم برای اینکه بالاخره از یه جایی اومدم دیگه. همه خانواده دارن. دارن دیگه ندارن. اشویدم ام... یادم نیاد اسمشون چی بوده چه شکلی بودن اصلا هیچ‌وقتم پیداشون نکردم ولی راجب چی میگفت مامان بابا ها اها مامان بابا ها افالی ماما راجب مامان بابا ها چی میگفتن اوه تازه خانواده است اوه چرا ما خیلی خوب باشی ولی شما سنتو خیلی غمم باش باش جاهای عزیزم مامان بابا ها وقتی به حمزه میره بگید ما گاراجوای کوچولو آماده باشین الان سفره ما رو یا میرسن باید به موقع اونجا باشیم میخوایم شیر بخونیم و را بیافتیم پس بپرین بالا کسی به فکر کوکه صفر ماهیان نیست از با اینو صاف کسی دیگه به فکر ما نیست وقتی رسید همینکی خورده وقتیاش دستی کشید ذره قرار نگه ناشت من جا از لب سخه دیو چین؟ کام شنید این چیگاه برینم ویدی آن پور زیاد دور نشو میل برنی و واتن پرست برگردن اون یونسی شروع نکن بچه‌ها خوب گوش کنین وقتی شوفره ماهی اومدان باید همه مواظبه چی باشی؟ یعنی مواظبه چی باشی؟ عالیه آفرین شوفره ماهی‌ها تعدادشون خیلی زیاده پس وقتی حرکت میکنن جریانی که از باله زدنشون ایجاد میشه خیلی قویه اگه حواستون نباشه ممکنه کشیده بشیم به داخل اون آقای آفرین شوفره ماهی چطوری راهشون رو پیدا میکنن؟ آفرین، موازنه که سوال خوبی با حس درونی نام قریزه گوهی چیزی تو عمق وجودتون با هاتون حرف میزنه که باید بهش گوش برید به. بسیر این آهنگی خیلی برای مناشناسته خور به ما مسیح رفتن و به مالشون میده کارهای نام سیگن و به خونه جون میده ما فقط به راه من اگاه نمیدیم و به خونه میرسید به ما می مسیح سخت و کشت سمزانیم و زنده. بنت کنابدت آب بخره بهش. خلیج مرو توقیان و سارام. جواهر خلیج مرو توقیان و سارام. یه چیزایی در یادم میاد. آ، یه چیزایی یادم اومد. واقعاً یه چیزی یادم اومد. یه چیزی مهم؟ یه چیز مهم؟ خب چیه؟ بگو دیگه. آ، دیگه مطمئن نیستم ولی میتونم حسش کنم. هنوزم تری جاما بریم دنبال این. دوری بازی در نیار دیگه بس کن، ساکت شو، ساکت ها. اخی اخی چی شد یادتونم اخ نه یادم ایمت نمیدونم یه چیزی بود راجع به من او او او ای یه چیزی بود که این یه چیزی جوهر خریش مارا تو اخیارست آرام اخیار پاپا خود منم یادم اومده اونا یه جایی همون جا هم باید پیدا شد کنم شما باید بچه ها از گوشین کجای نچه بری اخی خود دیارو, کجا رفته‌س تو ساکی؟ خودت یه کجا می‌ری؟ بابا یادم موحشی دقیقاً چیال تو من؟ بابا رو بابا بابا یه خونه ما اینجا. اوه من نمی‌دونم من کجا. بیا بیا. واش سوبینم می‌خواد بره. میگم کجا می‌خوای بری؟ دیوونه واسه در نیار. کجا می‌خوای بری؟ برم انگشتری دریایی بازی. نه جواهر اقیانوس ارا. واش سوبینم خلیج مرو اون ورا اقیانوسه. بشین سرجاخه من نمی‌فهمم هر وقت ما رو این تپه دریایی دور هم جمع می‌شیم یکی می‌خواد بره. واشین از منظره لذت ببرین. فکر کردی دیگه چیه وقتی من خونه با آدم یادم اومد نه نداره اقیانوس نواردیم بس دیگه نمیخوام اونطوری زندگی کنم فان ها گالیلی که سفر میکنه اینه باید باشه که دیگه سفر نکنه پیش این سرجات خونه با بابا بادم... لطفاً کمک کن تاو چیزی که میدونم اینه که دلم براشون تنگ شده خیلی خیلی دلم براشون تنگ شده هر کسی این حسو تجربه نکرده من تو میدونی چه حسیه آره میدونم چه حسیه نمیخوام این حس رو فراموش کنم خانوادم یه جایی تو این آقیانوس هم خواهش میکنم مارلی من نمیتونم تنهایی پیداشون کنم حتما یادم میره خواهش میکنم کم کنم پیداشون کنم قبول کن دیگه بابا تو بردی ما رو ببری اون برای آقیانوس میتونی؟ نمیتونم الی یکی از که میتونه این شعب ها یک بار دیگه نوتام بگیر ازم آقلی هنوز هم نگردی همه چیمون با تو دیانم نه تست بابا به با اینجا حتی ها بالا نمیاری ولی زم بگیر ازم آقلی حالا اگه بالا آوردی هم نگران نباشی ادماهی استفخار هستن میخونن نچونه مابا هشکی اینقدر دادن به مادیم آده دارم دومال هم ای دارم دنبال خونه و آدم می‌گردم اونو تو سنجاقسینه ی ای... جواهر خلیج مارا توختم سه آره پسر چطور می‌خواد پیداشو مگه یادت چه شکلی بودن ها باز یه ذره حافظه م برگشته ولی حالم مطمئن نیستم ولی فکر کنم باید آبی باشن یا با نارای زرد و عین خود دیگه مطمئن نمبینمشو بیشترشمو به هر حال هم کن دیگه من همون یواری که تو او یادو سفر کردم واسه حبوشتم بس بود همون ولی اگه همون موقع تن داشتی بهش میگفت نرو حال هم نده بچه همی اوه، اوه. با همین دولیه افتباش کن بادام پس آبی خوانیم امیدوارم خانوادتو پیدا کنی <تصفح> جد و آبادم ازم درمان اینجا خیلی آشناست بابا داری داری واشتا میکن واشتا ی دیگه داد نکش تو واقعا فکر می‌کنی پدر و مادرت اینجا معطل موندن که تو برگردی هی مامان بابا ماما. نمی‌دونم فقطم یه راه هست که بفهمم مامان بابا, کن. ماما. بابا. اه؟ اه؟ اه؟ چی بود؟ من انترنتی داشون کنم مامان بابا چه دهی شیون وصی ما قبلا هم این صدا رو شنیدم یادم یه چیزی قبلا هم بو من بودم دیگه من یه دقیقه پیش گفتم هی <تصفيق> اونم نکن ممام بابامو نردین اسمش اون چیه نیا <تصفيق> چوریه ها جنیو چارلی چه میگی جنیو چارلی دیگه کیه اسمم مامان و بابام جنیو چارلی داداش دور گاز شروع کرد یه دقیقه میگم وایس یه دقیقه بفهم پوش بده الان گومو گور میشیم اینجا بخش دیوونه میمونن از بد دل نگیرید جنی چارلی دوری دوری یه دقیقه داد بزن چارلی دوری عزیز من اصلا کار خوبی نیست بیا تو محله جدید داد و هوا را بندازی جنی. بابا جون من اسمم مامان و بابام یادم اومده ای جنی دوری داره هم خشنگو بچه همین محلا یه حسی داره بهمی که اینا یه ای چیزی میدونن که هی میگن هیست شاید یه موجود خطرناک رو بیدار کنه مثلا یه موجودی با یه چشه گنده و دندونهای خیلی تیز حالا نه انقدر وحشتناک ولی یه چیز تو همین مایا کلن جای جدیدو قریبه نباید ها <تصفيق> سلام علیکم شما اینجا بودی خیلی مخلصیم ارز کنم که براما بروچه های لایروبی هستیم شایدیم شما خدم ها لازم داری اگه نداری که ما رفع زحمت میکنیم از خدمت شما مرخص میشیم ما زیاد داریم خورد منو خورد منو خورد منو خورد هم شو رفع نه نه نه خورد نه خورد برام کنم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 دیدی، باش تو، باش تو. دیدی دو باله مونیس. میگیم باش، دیگه دو باله مونیس، چرا دیگه چرا؟ آخ. چنی، چنی چولی. چنی، چنی چولی. همین الان اسممون بابا بیادمون بود، بعد به راهمون ادامه بدیم، خیلی لازنیم. مرن آقا ما. آی، وای وای، دستت رو افتاد ما نمی‌دونم. چطوری؟ بزور برو کنار یه دقیقه. چطوری؟ برو کنار میگم. چطوری پسرم؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ بز خوب نگاه کنم، بعدم زخمی نشودی. چی شدی؟ یعنی با اونجور چی شدی؟ نزدیک بود بچم بمیره تخصیر توه راست بگی؟ خب خب درستش میکنم من خور بیدم میرم کمک میاره همه روی بیرم چا فقط یک کارو ولدی اونم اینه که فراموش ای... کنی یادت بره همه چیو از نم فقط همین ازت برمیاد درسته نمیدونم چرا فکر کنمم پسش برمیام من یک وقت نمیتونم خون وادم و پیدا کنم خ بیرن کمک بیارن باشه آره من از پسش برمیام زود بند میگردم خرابکاری هم نمی کنم نمو آهای آه نسی اینجا نیست؟ آبای کسی نیست؟ یعنی هیچ کس اینجا نیست سلام سلام من رویا تینوریان هستم سلام اه اه چیز اه رویا خانم من کمک میخوام به ما به پیبندین ایجالی و با ما شکفتی های اوگیانوس آرام و حیات بیمانندش را تجربه کنیم رویا خانم رویا تیموریان کنیم و از قصرارو شکفتی های, های داری. زیره دواری کجایی تو بچه هایی که پیده کردن به امون کمک میکنه رویا تیموریان خوش سرش ایتر لکو ببیگورش پلاسیکی نگاه کن از در حالیت بکرام نمیزارم بالی نمو کمک نه نه, نه بر اینش داریم نگران نباش ما بیاییم نجاتت بدیم برو ما سسیر زندگی آبی خوش آمدیم جایی که ما به نجات دادن درمان و آزاد کردن باور داریم مارلین نمو ایشکین تو نیست کمک یک کمکی می کنیم خب من چه کمک خبی شبازی چیه مثلا دانشمند؟ یرم می می میخوام بخند دست ببده یه برچسب جابجاییه اونا ماهیایی که نباید تو مؤسسه بمونن علامت گذاری میکنن بعد میبرنشون به پناهگاه دائمی یا اکیواریم تو کلیولند ماهیای اینجا برگردونده میشن اقیانوس ماهیای کلیولند همیشه اونجا میمونن وای برای همیشه نه من نباید برم کلیولند بعد خودم برسونم به جواهر خلیج مارو تو آخر سارام الان همون جایی که میخوای مؤسسه زندگی آبی تو جواهر خلیج مارو تو اقیانوس آرام رسیدی به مقصد یعنی من اینجا به دنیا اومدم مامان بابا اینجا بعد والا کدوم نمایشگاه؟ سی من تو این نمایشگاه دنیا اومدم. خودونو اسباط برم اونجا. کار سخت یه دختر جون مگه اینکه آها. نه جواب نمی ده. اخر دیونه بازی. میگم من اون سختیونه بازیام. میدونی چی تو فکرمه؟ فقط یه راه هست که من بتونم تو رو به خانوادت پرستونم اونم اینی که برت داره آنه آلیه منو بر میداری میبری پیششون چرا به فکر خودت دارستیده؟ نه دخترچنم من برت میدارم و برچس به تو میکنم اونوقت من جایی تو میرم تو کامیون و حمل و نقل تو هم میری تو محسسو و خانوادتو پیدا میکنی فقط باید بذاری من برچس به تو بر خودو برچس؟ وای یه برچسب زدم به بالا. الان یاد اد رفت برچسب به بالا تا یعنی چی؟ خب امم اختلال من اختلال حافظه کوتاه‌مدت دارم. یعنی هیچ از حرفایی که تو الان زدیم یادت نمونده؟ نه بی زحمت یه کلمه‌ش هم یادم نمیاد. با یعنی چرا بعد قرار شد برچسب بزنیم؟ من برچسب با مون خیلی دوست دارم. اصلا شما بخش چیکار؟ می‌خوام از اینجا برام. می‌خوام از اینجا برام واتفریم کلیپ بدم. کاری که شو شنیدم چرا می خوای بری اونجا چرا اگه اینجا بمونم میبرن تو اوگیانوس آزادم میکنن من خاطرات خوبی از اوگیانوس ندارم می خوام تک و تنها توی جبه شیشه زندگی کنم این تنها چیزی که می خوام برخشت بده رکوپی آخه تو را دستم گیرش بولات سنگینه بیبی من نقشه همه اینجا رو ندارم چون اینجا کار نمی کنم نقشه؟ فکر خوبیه منو ببر جاله یه نقشه تا خودم ببینم آمان بابام کجن قبوله؟ واشه اگه من تو رو به خون و دت برسونم تو به من چی میدی؟ نه که آخواستم چیزی ندارم اینه اینه اینو میخواه اینو بدم عاشق فکره قشنگم عالیه مطمئنی هم چی حرفی زدم یعنی من بهش گفتم تو فقط ولدی فراموش کنی من بله, من بهش بله, گفتم واقفی داری نفس رو آب بعدم یه آدم گرفتی خیلی کم از ازم... نمیخد دوباره حوا را برام تعریف کنی فهمیدم دیگه واقعا اصرفم منظوری نداشتن می‌خواستم یه دقیق آروم بگیره اتفاقا داشتم ازش تعریف می‌کردم گفتم ایول بهترین کاری که می‌تونی بکنی همینه یعنی من اینو رو نگفتم بهش وای وای وای وای وای خاکی عالم به سر من همش تقصیر منه تقصیر منه که دو سیدنش بردنش اصلا کجا بردنش نکنه برده باشه رستوران های سمایان قفقان بگوید ماهی قرمز ببن فک رو داشتیم یه خواب خوب میدیدیم نگه با همان خواب خاک برسری را میگوییم یا بدش مرا به خارج میاد دارن آقای ببنید بسر بسر بسر جانوان ببنید. ببنید. عزیز من اینا شیر دریایم ما هم غزار شنیم هر لحظه ممکنه بپرند سمتمون ولی این حالش ما دارن و بابا خب اونا هم دقیقا میخواه ما همچین فکر بکنیم دیگه تو وایستان همینجا بذار من باشون صحبت کنم سلام آقایون یک هد دوستان ما رو بردن اون تو اونجا رستورانه هه <تصفيق> هه انجا که رستوران نیست حال دوست تا خوب است هاج مرز خاله ابزیان است با نورویا میفرماید ما به نجات دادن درمان و آزاد کردن باباجی مون کارشو بلده زود خوبش می شه با امراض ما نامه داد با تو گات های گلخانی را به بودش خیالم راحت شد وانگا اوغان را آزاد می داد ها آرامش و سبکی مخو من نمی تونم برو برو برو برو برو مدن جان جان ان اینستیتوی زندگی آبی جواهر خلیج مروی اقیانوس آرام میباشد. راست میگم. <متصف> بیا فقط آرامش کردن بلد نیست. آره نموجون حق با شماست. حالا چه جوری بریم تو مؤسسه؟ ما گیم مریضین میخایم بریم اونجا. 100% دوست بیچارهمون اونجا تک و تنه از ترسیده نمیشه. پس بوت چیکار بکنه؟ <متصف> ما میداریم چیکار. خب بگو رو رو رو چیکار کنه خلاص کارشون سردرد نمیونه هر seferی میبینی سدا تو یه فایق من خیلی خوشحالم تو رو دیدم کردام انگار چیز بوده این سرنوشت دفعه هزارمه که میگم این سرنوشت نیست آخ آخ قبلا هم گفته بودم ها آخ ببخشید میدونی من یه کم هیجان زدم آخه قرارو با مامان بابامو میذارم خو خیلی وقت نمیدیدمشون حتی نمیدونم مثلا اون چیزا رو میدونم نمیخواد توضیح بدی میدونی ازش چم متنفرم از اینکه یه نفر یا هی حرف بزنه یا سوال بپرسه آخه چطوره خوبم تو چطوری خوبی مامان اینا خوبن هیچکس حالش خوب نیست سلام مامان اینا خوبم مسخره این چه چیزیه نخشه نخشمون این چه جس روی نخشه بفهمین ننه بابات کجاست منم و برم کامینی که میره کلیفلند گرفتم خدا قبل شکوت کردم شوف ببین اي بابا باز هشت ماه در رفته وای همه ای نمازگاه ها اینجان فکر نکنم بشه کل مجبورات یه روز باز این خانم نمازگاه می خواد حالا میگی من چیکار کنم خب بگردین پیداش کنید دیگه اینم هم از همین امروز که می خواستیم آزادش کنیم در رفته آره الان جلو چشمه دیجی میگم ندیدمش ماشاءالله این سلام کوچولو ببینم ببینم هر روزه ماشاءالله و کی شروع میشه مثلا ا گوداکو بابا بابا آخ جون یه بازوی منو کندن نمیخوام یه بازوی دیگه هم از نش بدم من به خاطر تو یه بازو تو کندن خب پس تو حرفای ناش با حافظه نداره برای شه مردن که دیگه بلد نیست تک تکارتو بخواد سفر با عمو یه صدف اونجاست آ یه صدف اونجاست بابا این صدف مال تو آفرین شو پولی مو پولی با این شو دو تا صدف آری، ไอ سيفلو تو یکی دیگه هم پیدا کرده بودی. کارت خوبه. ای صدفی اونجاست. ای اینکه خونه آوردی. ای قربونت برم. اوشک صدافم. مادر من صدفم. منم همینطور. می‌تونی یه صدف دیگه برام پیدا کنی؟ بنفشه ش دوست دارم. باشه مامانی. صدفه بنافش! صدفه بنافش ببین! خودم اون برای صدفه بنافش بود! ای بابا نصف نماشگاه اینجا صدفه بنافش ببین. دارم! ببین، بمیگیری چی میگم! الان مامانمون یادم اومد! آشخص او صدفه بنافش بود! خیلی خوشگر میخندید! بابا دارم خیلی با مردم! سه خاطراتا داره کار دستمون میده! یا، هنوزم به سرنمش متقدی؟ اصلا چه رفتیدش کجا میریم؟ آه. اسکرول به مرکز فکر کنم این اشو بر پیدا کردم دیدی چیکار کردی ببخشید اگه بهتر ازت نمی‌شد ها دستنی ها یعنی سناد کجایی حتماً قایم که کسی به من بگه بپرنتون صدق این خیال نه پشت دستنی یعنی سناد من نه نه نه نه من بغیت میرم تو نمیپرم تو اون چرت بس منم نمیپرم چی مش واسه تا تو برمیپری سلام بچه من دارم دوباره خونو باید میکردم فکر خوبی، ما سلام مردیم ببخشی، من همش پلک میزنم چطور این همه پلک نمیزنین؟ آه آقا هم مردین؟ <تصفيق> آقای شادم ریزاد خواب بچه ها جونم یکوسته نهنگ اینجاست که خیلی وقت اینجا زندگی میکنه اسمش چیه؟ دستنی اسمشه؟ آقا دستنی یعنی سرنوش بچه ها این تفتی چشوش کاملا نزدیک بینه یعنی نمیتونه اطرافش رو شناسه ای کنه آماده باشه یاره میاد شو <تصفح> میشه دستنی بای کانی ماهی آقا چی؟ صدای چیه؟ سلام، منم باباجون. می‌تونی کمکم کنی؟ خاله، شما هم منو بولید میام. آی خاله، سلام. چی هستت؟ یه لکی آبی داره حرف میزنه. کمک می‌کنی؟ خورو وادمو گم کرده. چه چدی میگی؟ آره داستانش طولانیه ولی فقط یه کمش یادمه. چقدر غم انگیز و خیلی نورا. اوخ. <تصفيق> به بخشی من شهر نگر بدی ام اخه خوب نمیبینم نه بابا باشه کس نفس نمی کنی من نمیدونم یه ماهی به این گندگی انقدر خوب چرا کنه من خورش میکنی وایسا یه بار دیگه بگو ها هیش میکنه دوری بله دوری بله دوری بله دوری بله مامان با هم دوست بودیم. مرهو. دوری منم دستنی. یعنی منم nhớسی؟ قارتی که وقتی بچه بودیم با هم حرف می‌زدیم از سلوله‌ها. وای <تصفح> تو چقدر خوشگلی. اصلاً خودمو بلدی. بله تو نمایشگاه آکواریوم رو باز کردی. آکواریوم رو باز؟ یعنی مامان بابا مونجا وحیت بریم. می‌بینی منو ببری اونجا. یه کوسه نهنگ تقریباً روشن. چه جوری ببرمت؟ یه کم آروم‌تر صحبت بکنین. میکل درد بگیره. آقا کی باشه؟ دیلی همسایه‌م به خاطر آسیب به سرش آوردنش. وقتی سر مصافه می‌جاری می‌دانا حوانیا بیان که سی شانز رو بده داره شداویش ماون دشمن شداویش ماون به من میرسه حوانیا بیان اگه سی چیه ببین آقا بیلی اول باید یه صدا رو بفسه بعد انکاسش رو بگیره تا بتونه جای اجسام رو تشخیص بده ولی اگه بتونه قورت بیچاره یسری که تو روم داری میگی من واقعا نمیجوابم. داغون یانو ضربه سختی به سرمون خورده. باد کله ما رو نمیبینی. اجازهت اینه دلشینه کله گنده. مکان یابی انعکاسی. آ یعنی مثل قبیطری یعنی دیگه جهان میمونه. اینا دیگه چیه؟ مثلا میگی او بعد همه چی رو میبینی. من چهره نور ولادام. آ خیلی جالب بود بودی. ای با پیدا کردن قر ماهی به من بده کاری بورد به داخل دیدی والا باید بر کشیدم بدی بر من نمی‌دارم فهمیدم مامان مامانم کجاست اونا توی یه دونه آکواریوم دلباس هستن. روباز, روباز بابا. بابا. فهمیدی کجا؟ آکواریوم روباز من میدونم کجاست. چرا زودتر به من نگفتی تا بهت بگم اصلا برام مهم نیست. واده باشی. من خبر به نمایشگاه آکواریوم روباز چرا از تو لوله ها نمیبینی؟ آخ قربون دل گشادت. از تو لوله ها؟ آره، دوباره پیش براست با پسته این بود. آخ آدرسش خیلی طولانیه خیلی. ببینم حتا همشو یادت موند؟ آره یادم موند. سفری بساز میریم. من جا میشم اینجا خودت تنهایی بعد بری. آخیش خب من خیلی خب باشه ببین خب من نمیتونم چون میونم با آدرس و مکان یا بینا اصلا خوب میتونی خوبش. یا نمیتونی به من چه جنابالی میخوای خانوادت رو پیدا کنی بس پت بری تو برچسبم رد خوب بیاد من نمیتونم تدقی برم تو لوله ها و سیگی بس چون رو یادم کنه چه نخوی به من داره برچسبم بده این راهشو پیدا نمی کنم هیچ راهای ای ای ای دیگه این وجود نداره این راهای ای ای دیگه ای وجود نداره. <تصفح> ات سایتی که هیچ فوتت نداره. من دخترم نگران نباش. پول پول سرم قرار نیست همه چی تو زندگی آسون باشه. مگی نه باباش. آره مامان درست میگه شو پولی مو پولی. شما هر کاری سخت بود بی خیالش شو. ایو چارلی. شوخی کردم شوخی کردم بابا میخواستم بگم همیشه, همیشه راه دیگه هم هست. شما به این تفاوت. نمی دیدی همیشه راه دیگه هم هست شو پولی مو پولی. مامان ننه بابایی. مامان ننه بابایی. نه بابا گفتم چه راه دیگه‌ایام ها هیچ هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره واشپریو برو باس بذار نشونت بدم <تص> کجا باید بری اون ساختمونه رو می‌بینی اون اونا انگار یه کاسه برعکس روش آینه کله ویلیه همونجا کله ویمان گفتم همش چه راه دیگه‌ای از اونوش زب باشی باشو می‌دونم چجوری برسی واشپریو باخوار رو باد هراره همو دیگه هی بچا از من معیوب بیچاره که انتظار نداریم با شما بیام خیلی گناه داره دو ساعت دارن از این صداها در میارن دقیقا دارین چی کار میکنین؟ اکنون خواهیدید اکنون خواهیدید؟ آقا چیو خواهیم دید؟ یاران با به کی آشنا شوید؟ بای نه نه نه نه نه نه آقا جون پرواز بی پرواز از این مانمازن هم تشکر کنیم بگیم بره شما هم خیلی تو زحمت افتادید میشه یه راهی پیدا کنید که با شنارم انتو شلون انگه دقت کرده باشی ما ناسا سلامتی ماهی استتان در امارات قرنطینه محبوس کشته تا حکیمان بر بالنش حاضر شود تنها راه رسیدن به اونجا پرواز با این روانی <تصفح> بکی جان میگم بهتره سادش کنی نوک نوکی قلت بهت سره بابا دیگه کا عشق من این دو ماهی قصه ازیمت به امارات قرنطینه را دارم امروز وقت آزاد داری عزیزم بکی جان <تصفح> <تص قرار مداش نداری مطمئنی اخی جان اصلا تو باغ نیست باید بگونه ای در ذهن او نقش ببندی چی ببندم؟ نقش ببندی در دیدگانش خیرشو و بگو رو و ادراه با تو منطبق میگرد و در حال در چشمش خیرگر میمو بیرم یار به نظرم بتره این نقشی دیگه بکشیم من از زندلم نمیخود با این پرواز کنیم از آقلا ننیز آقا به اینم میگم پرنده این پرنده از آتیش به سر کلم آتیش بابا فقط شو خیلی طول میکشه داری ما رو یادش میره همونطور که گفتی تن و کار یکی بلده باشه آماده ای؟ زگیلشان تو چشمش آقا کدوم چشش؟ انتخاب با شماست بکی جان بکی؟ ده... یاد ی رو رو رو بکی نقش نست خب فکر کنم درست شون حالا بکی جان دقیقا ما رو چجوری میخواد تا اونجا ببره برادر به این میزندی شیده این جرالد بیاید جرالد بابا بیجله بابا چه ابروبانی ببین چقدر زیباتر شده نزده من آی جرالت میخواید را ببوسم بیا نمیندازیم به همین خاک پدرم آره پیش آره که خاک این سرزمین را به فرزانی میداریم آفرین چی شنایم میکنیم بنشین فرزانم بکش بالا بندارو سخه اومم اکنون بار خود سبک کنه ای جوان مرد اینک خودتو پهن کن به حالا لذت ببر حال میدن؟ بازده دیگه، چقدر آبیزو بازی، برای، برای، برای با شیبود شدم، آخه چرا اقلا بوددم دست دودا خریفت دادم برمان آب، آب نشی با میدی دیگه تا من گفتم حالا سبابیه با دهیلی، باشی ربشلوب علومت میدم بفرمان من، حالا نه، هنوزم که نه حالا بریم ده بابا هنوز دستنی علومت نداده بیدون چیه، من اصلا نبتوام درک کنم که چرا این کارو میکنی منظورت چیه؟ این رو درد سر میکشی تا چند ماهی دیگر پیدا کنی اگه من مشکل تو رو داشتم دو اقیان روز میچرخیدم حالشی میگردم همچین هم کاری نمیکنم من خون وادم رو میخوام من مثل تو نیستم نمیخوام نگرانه کسی باشم تو خوششانسی حافظه نداری؟ پس قصم نداری حافظه نداری قصم نداری هنوز نه بازم که نه بابا اینقدر نگفت وقتش که شد به هم بگم برو برو برو نقشت هم بکن یه همیشی چرا اینجیلی میکنی خلیت کردم دیگه هیچ بازی در نیار دیگه بکیا حالا حالا خوششو افاقی کسره هنگراده این علامته برو برو برو علامته اون ادیت نرتستنی گفت فقط تابلوهای راهنمای آکواریوم رو باز دنبال کن بش بش ببین من این زیریچی ای نمیبینم تو با تابلوها رو نگاه کن گرفتم تابلوهای راهنمای آکواریوم رو باز بعد تکرار کنم که یادم نره تابلوهای راهنمای آکواریوم رو باز ای برو راس این تابلوهای راهنمای آکواریوم رو باز پس این ای باو این تابلوها راهنمای آکواریوم رو نه چرا از راهنمایی کو نخوریم به مرد اصلا بچا نمیخوام بمک دست بخان سی میگه حواسم میکنی آخی بایی ببخشید همه سا پشتون بری برای. بیا کچه برو بیا برو بری. حالا بریم حالا کجا بریم برو بریم موردمت حالا بقیشم بدنیگم دیگه شوش بکی جان هر جا خواستیمارو بزن زمین رفع زمت میکنیم بابا یکم دیگه تاقل بیاردانه دوباره یک جمی گرده فروت بیاد فکر میکنی این حالی چه داره چی کار میکنه یک چشش زمینه یک چشش آسمه بود بیکی، بیکی، نه، نه، کنجا بینی؟ رو، رو، رو، هشه، بیکی، بیکی خب، حالا بعد یه وری بریم دیگه چی؟ ولی خب کدوم هست؟ یه وری یعنی چی ببین؟ علامت ببینی؟ دارم میگردم، بابا چون دارم میگردم، اه تابلو عام تموم شدن، اه، یه تابلو قوی ترینه اینکه جهان چقدر آشناس، یعنی چرا برام آشناس؟ حتما یه خاطره دیگه است، هنگ برو سمت چپ بیکی او را او را تو نمیشنبه بابا باشه باشه خیلی خوب اصلا میدونی چیه میریم نزدیکه به کهی تا سرابونو بشنبه هل بده نکنم به درس ازو دکنر یا بابا نمو, نمو. نمیتونیم همیتونیم دست رو دست بذاریم که بابا بهش اعتماد کن به اون اصلا خیافش به این چیزا میخوره من که اعتماد داره نه بابا یارو چلشی کرده تو لیبان بکی بکی او را آه. خاله خوش خوشگل برنامه می‌کن خاص خب حداقلش اینه که دست سطل خلاص شدیم سرش کی الان ما مو بالا بودیم بله برنامه بسيط از بچه‌سگ آبی سلام هر کی می‌خواد رژه به سگ آبی چیز یاد بگیره پول تو بیا جلو همین تن اینا که جونو پیدا کن قایتم اینا که جونو پیدا کن سگ آبی موری الان دقیقا کجا این نزدیک آتواری ما رو بازیم آره فکر کنم یاری راستش نمیدونم واخی یه تابلوی دیگه دی... تابلوه دیگه کدون تابلوی دیگه تابلوی غمیترین اینکه جهان بود چرا این تابلوی دنبال کردی؟ برای چه میدی تو خاطراتت؟ راستش خب یادم اومدش خانی چه یادم اومد نقشه ما این بود؟ آه آه آه باشه دیگه وقتمو هدر دادی. نه کم یو کلی سر میز کلیپ‌نام منم باید تووش باشم هر چقدر هم بگی. نمیدونم من اون تابله یادم اومد. یعنی چه؟ خب آخه هی بیشتر سر بیشتر داره یادم میاد فکر می‌کنم حافظه‌م داره کم کم برمی‌گرده. نمی نفر <تصفح> نمی‌گرده. هیچ چی یادم نمیاد حافظه‌ات کار نمی‌کنه برای همین خولوناتو گم کرده. ها؟ کاری خواهم فراموش کنم چی گفتم؟ فقط اون بچه‌س بود ضرر بده من. می‌دونی چیه؟ با اینکه سه تا قلب داری خیلی سنگ دلی. چرا تاپرت از خودت در نمیاره؟ من سه تا قلب ندارم. چرا داری؟ ندارم. داری. ندارم. دوستای قلبی؟ من مطمئنم هشت پا هست و سه تا قلب دارم. نخیرم. چرا؟ دو تاش خون رو به آب شوشا پمپ می‌کنی سیفو میام به بغییم بدن خون میرسه. خجالت بکش. با سه تا قلب چجوری می‌بینی اینقدر بچه‌س باشی اون حرفا رو به من بزنی؟ من خونو بدامو گم نکردم. هنگ کجای هنگ هفت پا دست چیه هفت دست نداریم هفت هنگ هشت پای باب هشت دست دست چی میگی؟ دست میگی اینو میگم هنگ هنگ هنگ هنگ نکست هنگ ما چه پشکل کنیم کجای هنگ میشه کمکم کنیم هنگ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 متاسفم هنگ، منو ببخش که هیچی خیلی خوب یادم نمیمونه از سفرم، نرو های موازه باشم متاسفم بابا، منو ببخش که هیچی خیلی خوب یادم نمیمونه نه دوختری خوشگلم، نباید متاسف باشی میدونی باید چی کار کنی؟ فقط...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 آه! مامان بابا مشیری آدم دادن همیشه میخونی ببینم وقت فکر کردم خودمون رو ساختم چه شر شنو كنتو هنج بیا فقط باش شنو کنید شر میگه کجا شنو کنم گوش کن به من دیگه بس دخل به انقدر ترسید ققک حالا تو به من گوش بده اول بیا شنو کن تو آخر رو بس شنو تو آخر شروع واج شنو کن باي شنو تو آخر شنو گوش هنج بم بخو دیگه مامان و بابا من تو را میو باشی؟ <تصفيق> باید نهار وای نهار سیخونه های که میخوانیم سیخونه های که میخوانیم اکر بباشید آم را کردن دست مرکب بلدادی؟ شرمندم دشمنت شرمنده چون طبیعتته میبخشمت بزرگواری میکنی آبرون رفت هنگ، مای هنگ پیدت کردم آی دختر، تو واقعاً از اون تو نجاتمون دادی، میدونی؟ آره میدونم آه... دازه خودم تنهایی البته خودتم انداختیم اون این توها ولی خوب راستش اگه این کار را نمی کردی، هیچ وقت نمی رسیدیم به اینجا چی اونجا نوشته مکانیابی انکاسی؟ قوی ترین اینک جهان پیداش کردیم اونجا را چرا میخونی؟ این و را ببین به به نمایشکای آکواریوم روباز خوش آمدیم خونم مونه رو رو بکی رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رر رو رو روж رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رخ رو رو رو رو رو رو کسیب Being منظورت فقط بکی نیست درسته؟ دالتنگه دوریام. منم همینطور. <تصلا> <تصلا> راستشو بخوای خیلی خیلی نگران دوریام. اومد نگران ما دو <دوتو> تا باشه. حتماً اگه الان اینجا بود یه راهی پیدا می‌کرد که بریم بیرون. اصلاً نمی‌دونم چطوری نقشه می‌کشه. به نخونم نقشه بکشه. فقط انجام میده. آره بیا هم فکر کنیم. شروع کن اگه دوری بود چه جوری بود؟ اگه دوری بود چه جوری بود؟ آره اگه دوری بود چه جوری بود؟ رو شرایط موجود تمرکز میکرد عرضی ها بیش میکرد در آخرم بررسی راه های مختلف بابا عزیزم اگه تو بودی جوری بود؟ آره راست میگی دوری اصلا حتی یه بارم فکر نمی کنه اولین چیزیو که میبینه تصمیمشو میگیره آه <تصفح> قرش نمو محکم بنام بگیر ها انقدر دیگه چی حظب میدی بس انا نفسش نفسش فکش یه خورده دیگه الان میرسیم نفس بگیر Hvala, kumë, hvala! Hvala, hvala, doribu qi qi qi qi qi! Doribu qi qi qi qi qi! آه نمی دونه چرا از دیدنت خوشحالم دیدن من خوشحالم من از دیدارتون خوشحالم چند سال است که کسی گپ نزد دادم چند سال خب ما دیگه مزاحمتون نمی شیم متاسفانه باید زودتر بریم با اجازهتون ببینم کجا حنوراغتون خوش نشد یختس خودتون بگین ببینم ان شاء الله سر فرصت خدمت می رسیم الان منو پسرم باید بریم قرنطینه قرنطینه بگردی چون... اونجا حلوا میدن آمپول میذارن آمپول آمپول دیگه چیه خالی بزن بجونی همین مر واردام که می خواستم عروسش کنم ولی از شانس بعد یه عروس دریایی خواستگارش شد و ترچت اگه دوری بود چه جوری؟ با ما در کشف شگفتی های اوغیانوس همراه باشید خب دنباله میام توی شیشه ای. ای خب پس من میام دنبالت بدون این چاکو چاکو ا هش باها سه تا قلب بدم گفتم که مولعجب رسیدی دی واقعا رسیدی بافخت رسیدیم با آخرش من باید به کامیون برسم باش تو یه،, یه چیزی باید بهت میدادم به کی برچسبت آها برچسب بده دانتگر میدونی مطمئنم تو رو فراموش نمی کنم توی چشم هم زدن من رو فراموش می کنی البته من اگه بخوام این کار بکنم پدر جد هم در میاد پدر مادر هم واقع هنو پایین هم دوری آماده این؟ آره راسته <صطح> خوشبخت بشی <تسق> آه <مارود> آه <تسق> یعنی کجاون خب برم بیگردم دیدی؟ پدرخشت مذم شده. این شما یه ای مامان بابا ندیدین منو گم کرده باشن. واس میخوام شما یه سوجی پیر مثل خودتون ندیدی البته نه. شما که جوان هستین یعنی دیر بچون باشه. خدا بس. سلام کسی ها میشتاسین، بچهشو گفت کرده باشه سالها بیش تقریق نیمیدونم البته چند سال میشه بوده و للا پیدا شدم آو، دیرتون شدم حال موازه باشم شرمنده ترانیم بره بره، بره بره موجوداتی که نجات دادیم در طبیعت آزاد خواهند شد این هدف نهایی ماست خب دیگه رسیدی از این به بعد هر وقت گم شدی صدا افتارتون بگل کن عیسی من اشتباه شدم پولی حالا بشمون با قایم شیم دا دس سی سی پجو ویش می گون او با کیار میزنی شو پولی مو پولی دست دل نه می دستنی ماما دی سار جیانی عزیزم آروم باش. اون گیلن اون گیلنو فکر می‌کنی یه روز از پس خودش بر میاد؟ چردی. آره بابا همه چیز روز درست میشه، دل آروم باش. مامان تازه فای بنفش رو دوست داره. جیانی جیانی جیانی مامانم داری داری مدر بدرم من گامشون کردم تخصیر خودم بوده برچسبت که؟ حاش به کیگه گمش کردی برای همین تو قرنطینه نیستی دیگه قرنطینه آره همین سمیر تو فرستادن اونجا متو نیبیلی آره قراره جارو مایعی آبی بره آکواریوم کللفلان کامینشنم کاله سررا میافتقو کجا یعنی بابا مامانم اونجا قرار برن کللفلان من تو رسیدم اینجا با تورا پیششون اونا نمیدونن من اینجا بخیگران مخلی... نباش راحت میریسی به اتاق قرنطینه فقط پیاپری تو لوله ها عزیزم منه بدبخت که نمیتونم چرا خوشگلم؟ یادم میره دارم کجا میرم نمیتونم برم جایی که کسی نیست کمکم کنه باید یه مهمون خودمونی خودتاب میخواد این حسیتش نکن برون تو هرسیزم طوریت نمیشه طوریم نمیشه خانم میشه بگی این از چه مسیری برم که برسم به قرانتینه آره جونم دو بار باید بری به چپ یه بار بری دوبار به چپ، چن... یک بار به راست. برو دوری. خیلی خوبه. یادت نره. دوباره به چپ، یک بار به راست. دوباره Ciب... به چپ، یک بار به راست. دوباره به چپ، یک بار به راست. دوباره به چپ، یک بار به راست. دوباره به چپ، یک بار به راست. دوباره به چپ، یک بار به راست. دو بار به چپ، دو بار به راست. چپ، چپ. راست. راست و چپ. چن... چپ. Dobar be, rast çap. Na na na. E çapu dobar be çap. Je bar be, se bar be. E rast. Je bar be rasto ke piçidam. Je baram çap. Ej vay dare yadam ire. Daram kujam irem, yadam nis. Man gol sudam. Ta abat u in lula ham mimunam. Lula, lula. Assedatu in lula, lula, tusalulehim. Khay <sh seas Clyde> بیو بیو بیو آخ این کارو میفهمم میذارم به چیزی برخورد کنه دیواره آخ اح... بی خیال بابا من از پسش بر نمیام دیگه اینارو فو نزه نگه اینجا یاد بگیر هرگز نمیتونی برگردی اقیانوسا لاوتاهر گسگون دیواره آخ بابا من دو تامو دارن میبرن منم دلولو هوجو شدم اونجا بمون گوری هیی ما کن یابسه رابید من که مایو باشم دیگه بگو همون جوری که داری گف آقا من خیلی بی ترسم بی ترسم نگی Sot bësh bëhili, ala behti qi mëgaftën? Tëm artoz kën Gahumishu bida nëmë kënëm, mëtstëpani Bërgjoha, kujarë? Hemiën jai, hemiën jai Ća, či shod? Dariëm i niniish? Pidam kudam, kudam, kudashy, kudashy, dاخlë luli ro mibinem Qarantinë raha dîndam Ti balam, misër Hema čini raha mibinem Dori tura mibinem Përdiat kërdoori jiu Maioobam bërtarf shud Tu hama raha mibinem Aho, on kër kudreti manu nëdare Qelii Khele khob, bidori bërgobrini čepodas Bërdiat, mërdojant Muzdqim Muzdqim Rast Rast Rast Rast Laiq halam O سب گون او درنگی چی دیدی که میبینم بزاز زوم بکونم ویز ایوا خاک تو گودم باد بخورد میگه دیگه اونجا اس چی میدونم داره میره سمت دوری وای نه دوری scenery شنا کن برو یه بردی کجا بگو خیلی کجا رفت دست خاک بر سرم فر عکس گفتم دارم میرسم سمت مونت دونت برو بس برو راست نه خواه که میسر دوری بابرم نمیشی منخلا دوری در چردیم آه... ببینه کلش ناره میخوره کلمه های خوره نه گفتت بشه آه... بابرم نمیشی چطوری پیدا پردیم اگه ببینی همین الان گیری یه صدافه وراج افتاده بودیم ما یواشی رفتیم اقام و یه گشیده شدیم توی لولا بعد تک گفتیم اینجا حالا بگردیم دوری من مو موت از سفا دوری روحه که بود؟ یه دخواشت جوابش رو بدم چی رو؟ چی رو بودو هستی پیر؟ چی؟ حالت خوده؟ بیمان مارلین رو پیدر کردون بابا شنیدی؟ داریم و سبونه نه انگاه هستن آره هرچی بدبختی سرفتو کشیدم یاد آمد حالا چجوری از اینجا بریم بیرون؟ بسی ببینم از این ور بر بریم سمتی خونه باشتی بچه اه اه اه اه اه مامان بابا می جان راست بگی؟ بابا تو رستش نه کاملا ام. البته دقیقا میدونم کجان حالا بیاین ولی خب نمیدونم چجوری برسم اونجا کلن یادم رفت کجا بود باید کمک بگیرم دو قرانتینه بودم آره همون قرانتینه را سیبا یه هفته ها ماشده شدم از این گیه اخلاقای که تایی دلشون مهربونن اون من رو بردی نمایشگاه نمایشگاه داری؟ ماما مابا میخوان منو ببینن چی؟ مگه میشه من گمشون کردم دوری حتما مامان باباد خوشحال میشن از دیدن تو من شک ندارم اونا کلی هم دلتنگ تو هم راست میگی دوری میدونی چجوری پیداد کردیم کفی یه صدف اونجا بود و نه نه نه دو کفه این بود هل از اون نه. نه. یه موجود نه. که من نمیشن سن. نه منظورم این نبود ما دیگه نامید شده بودیم تا این که نما پرسید اگه دوری بود چجوری بود منظورت چه مارلین خب واس واخته دیه مت مدام با تو کاری رو انجام دادیم که حتا توی خوابم نمیشد دید. کارهای باورنکردنی. گل زدن کوسه ها، پرد از روی عروس های دریایی، پیدا کردن پسرم. تو باعث شدی تمومش انجام بشه. واقعاً؟ تو اله من نگفته بودی. شاید یادم رفته بود. نه دوری یادت نرفته. اصن بد نگفته بودی. آقا از این با بد متاسفم ولی میدونستی به خاطر وجود با عرضش خودت که داری پدر و مادرتو پیدا میکنی وقتی پیداشون کردی خونه همون جاست Baba, e ani dike dore, po ma bër në migjerde. Mi mone. Ora nemo. Amintur. <tune> shnukuntub, shnukuntub, shnukuntub. ببینم، چند تا دیگه باید دارن تو کامیون فقط همین یه رادیف مونده زودتر تمومش کنیم، این تفنی‌ها هم زودتر برسن کلیفلن ما بزرم سرت باش موازه با <laughs> به چی؟ دیگه هیچی فکر کنم داریم می‌رسیم سلام، فکر خرنجه اینجا؟ آره، یعنی فکر کنم هم اینجاست بلاخره رسی که، نمان ببام اینجا دران می‌برنه بود، کجا می‌برنه بود، نمان کجا میری درم میام بابا درم میام بابا صدا خونه مرز خونه نمردی ما قور باقیم شدی صدای هفته با میاد ای چی رو میاد ساکت زودی ما رو بندسون و مخصن چرا ماما باباشون جان چی سه دقیقه وقت داریم برگردین تو این شیشه بعدش هم من میرم تو کامیونو کلیف دارم فهمیدی؟ جواب بده دیگه فهمیدم که... توشون رو سوا کنه ورداره بریم دیگه باور کنید که همه شون اینه همه شوخی بودا ماما بابا ماما بابای منو صدا کنید دوری توی؟ همون دختر گم شدیه جنی و چارلی؟ آفایی درست گفتید من دوریم اونا کجان؟ خب دوری بعد این که تو ناپدید شدی مادر پدرت فکردن تو حتما رسیدی به اینجا اتاق قرارتینه بیاین بیاین بیاین دیگه خب برای همینم اومدن اینجا تا پیداد کنن آره خودم میدونم پس کجا دوری اونا سالها پیش اومدن چی؟ هیچ وقت بر نگشتن ای وای نگو ببین دوری وقتی یه ماهی از قرانتینه بر نمیگرده یعنی اینکه یعنی دیگه دیگه چی؟ دوری یعنی مردن اونا مردن خیلی دنبالت گشتم دوریش. بوت مانی بوت مانی مرتاد. دوریش جان حالت خوبه؟ دوری اون عاشقت بودم. من باید چند دقیقه دیگه برام کلیپ لندین آخرم اختیارم. دوریش آروم باش. دوریش جان مال. مال. من خوبم. دوری دوریش حالت خوبه. دوریش خیلی دیر کردم. من خورمات ندارم. دوریش هر هم هست. باید بریم. من من تنها Dori Dori Dori pas un do ta kojan Tu stoj i narancitë ramina kelimë bla bla ku thojmë bla نا نا نا نا نا نا نا کمک کن کمک لطفا هیچ کس نیست به من کمک کنه کمک ببخشید می تونید کمکم کنید من گمش شدم کردم یه چیزی گم کردم توزی بدم اونارو گم کردم من, من. من. یادم چجوری کمک کنم وقتی یادت نیست کمکم کن ای بابا میتونین کمکم کنین من همه رو کردم. هم از چیز... گم کردم گفتم گم شدم اصلا بر نمیاد یه چیز چیزه رو گم کردم کمک کمک کنین اون اون رفت گم میشون کردم همه رو گم کردم از بازه هیچ کاری بر نمیام مهده باید یادم بره چی یادم میره یه چیز مهم یه چیز خیلی مهم بود چی بود چی باید یادم بمونه چی بود در ذهنم میره در ذهنم میره چون تنهایی که بلادم فقط فراموش کردن فقط فراموش کردن فقط فراموش میکنم آخه چی میشه یعنی چی میشه بالاخره چی میشه آخه چه جوری میشه توری بوت چه جوری بوت توری تورو بره تورو بره نگاه میکنه بعد خب اونجا فقط باب است اونو برم که فقط کلی جلبک است خب جلبک بهتره بریم خب حالا چی؟ کلی جلبک همه شونم این همه همه چی یه شکله بجز اون تخت سنگ خب اینجا هم که پرست شنه من از این شنها خیلی خوشم میاد خیلی نرمه من این جام که به چه نمیرسه هیچ جن جان نیست فقط جلبکه فقط جلبک و کلی جلبک و چند تا صدف این این این مسیر من صدف خوشم میاد آسا خوشم میاد صدف سلام من دوری یا عزیز دلم وای چقدر بزرگ شدی چقدر خوشحالم که برگشت دخترم برگشته من دوری آره! همینجا باید ببینی دیگه هیچ جانه میذارم بری بابا آره عزیز دلم دختر دو قشنگم چرا چرا بعد متاسف باشی چرا بابا جان من میدونم مشکل دارم میدونم من خیلی متاسفم تمام این مدت داشتم تلاش میکردم همه چی رو درست کنم ولی راستش اصلا هر چی تلاش کردم نشد همه چی از ذهنم میپره بیرون تا شماره یادم رفته بودی توری توری عزیزم نباید بس متاسف باشی ببین ببین عزیزم چی کار کردی چی کار تو پیدامون کردی راست تو پیدامون کردی عزیزه دلم شو پولی مو پولی بابا فکر کردی چرا ما این همه سال اینجا موندیم چون ما مطمئن بودیم که بالاخره یه روزی پیدامون می‌کنید ولی ما فکر می‌کردیم شما مرده‌اید ما رفتیم تو اتاق قرنطینه دنبالت بگردیم ولی اونجا نبودید آره آره گفتیم عزیزم حتما تو از لوله ها پرت شدی بیرون آره از لوله ها درست عزیزم ما هم همین کارو کردیم بعدیشم هم تو همین الان اینجا منتظرت موندی چون که چون ما متوهم بودیم برمیگردی هر روز رفتیم بیرون و صدفا رو جمع کردیم تا خونه رو پیدا کنی صدفا رو تو بلاخره پیدامون کردی وای عزیزم تو پیدامون کردی میدونی چطور موفق شدی چون یادت اومد با روش فوقلاده خودت تو همه چیز رو به یادو بردی دوری عزیزم اره یادم اومد خودم تنهایی؟ عزیزم راست میگی؟ واقعا یعنی این همه سال خودت تک و تنها بودی؟ وای دختر کوچوله بیچاره. نه، همیشه هم که تنها نبودم. ای وای، وار لینونو نمو. یعنی واقعا هیچ کی نری دوری کجا رفت؟ نای... یعنی چی؟ مو این چشهای قلانبه اه... هیچ کی نری دین؟ ببخشید آقا میتونی کمکمو کن؟ کمکم کن. کمک ای بابا نمی... آی خدایش شکل دیدین ما دیدی من میدونستم بلاخره دوری چی این چم از خروازیه دوری که شرمندم من سعی کردم شیشه رو نگهت دارم ولی متاسفان از دستم افتاد شکست خیلی خواهد بدم بد با این که با زبونش باش هفت دادم ولی نهنگم رو خوب دارم یه نهنگ اگه که... نبودم که ببینم. مالی باور نکرد من زبان نهنگارو نه بلدام ولی خب همیشه ته دلش به من اعتماد داشته. ندید از مالی خوشم اومده. ولی به هر حال نما رو پیدا کردیم. البته شده ما رو پیدا کرد. من نمیدونم. می‌دیدین نما خیلی شیرینه. هر اتفاقی هم افتاد هرگز از من ناامید نشود. دوری بود، چه جوری بود؟ دوری بود. خب چجوری. ما باید از, از اون دو تا خیلی ممنون باشیم. ما... اوه. خی... باشی. من زیر میز هستم. سلام. من رویا تیموریان هستم. به ما بپیوندید. وا با مامان شکفت. زندگی اوی اینو چطور می‌دونی اومد؟ مطمئن دوستات الان اونجا؟ آره، اونجا گیر افتادن توی یه چیزی بودن که می رفتن ب... دا یعنی داشتن می‌رفتن یه جایی به شکفت. اون از کامیون آلی نه نه نه من دیگه نمی‌بینم ایشون توری بود چه جوری بود توری بود چه جوری بود چوری چوری چوری. آزیزا می‌دونم اونا دوستای صمیمی تام ولی هیچجوری به کامیون نرسیدن. آره حق با مامانت. می‌گم من فقط می‌دونم دلم براشون تنگ شده. واقعا دلم براشون تنگ شده. ابلا منا گفت آخه دوری مامان مارلین و نما فقط دوستام نیستن اونا اونا خانواده منن من باید برش گردونم ببینین وقتی پیدام کردن مطمئن بودم این, این کار تقدیره میدونین چی میگم کلمه ی هم معنی تقدیر چی بود سرنوشت ها دستنی دستنی دوری سلام علیکم ساکت حرف نزن دوری یه چیزی شده ابجی کمک میگام پیدهش بگودم بیرونه اخ. بدبختی ماید بدباریم پسشیم بیاو دوست نیم داری. داری؟ داری؟ اونا هاش کامیون داره دوستاتو میبره داری؟ اونا هاش ای بایی نه نه نه نه نه نه داری دوست نیم آو می نفس حاضری تو یک باشه دو. نه نمیتونم عمران از پسش بر نمیام مرد بوش بگیر بنده قوی ترین اینه که جهانو دارم چی شد؟ دو قوی ترین اینه که جهانو داری من می شدم تی چشمان تو می شی چشمای من ولی دیوارا رو چی کار کنم؟ تیجا جن تو اگیانوز دیوار کجا بوده که؟ دیوار نداره؟ این تی سر نبشته دست نیم چرا زودتر نگفتی دیوار نداره؟ سب کن سب کنی اینجا رو نگفتم که دست نیستم داری این لکه های آبی مامون بابا تن این خودتو هست سلام من بیلی هستم سلام مادر جان سلام بادر جان آخه میچنی من رو چیز رو سرده کنیم من چارلی هم بسته بریش داره کامیون باشه فقط کامیونه کجاست خوخه بیلی مکانی آف بادر بروی تخم چشمم پیداش بگودم کامیون داره میره تو بزرگ را به سمت جنوب بری بری باید دگه هست دار اگه دیدی دراکره رو ببینم آره منم بسی مسررت بخشات چرا چطور جرأت می‌کنی من گشتام ببینم رد نمی‌کنم باید سراستنا شده چرا بیلی همه چی یادم رفته بگو چه خبره کامیون انقدر چرا اس او بستم دی پول او یک سری سگه عواپی احساساتی اونجان همش هم دیگه ناز می‌کنه من فضیلت ای موخا بابا دی اوه اوه اوه اونجا رو نگاه کامیونه دیدم آخه چطوری می‌خوای بهش برسی دوری؟ فقط میتوانس میت ترافیک اصلی فکر سفری همه ماشینا بعد وایسند آدما بعد حواسشون به یه چیزی پرت بشه به یه چیز بانمک بزنه آره سلام چاله چیکار کنی؟ ببینید وقتی کامیون رسید روی پل با دومت منو پارک می‌کنی اون بالا باش ششش بارواس، با من بیاین. بقیه همینجا بمونن. وایس، وایس، وایس. تو نرو. دوری عزیزم، تو از کنار ما جمع نمی‌شی. بخواب مادرته، باید پیش ما بمونی. کلی خوشگلم. اگه بری و نتونی برگردی چی؟ اگه گیج بشی و همه چی رو یادت بره، اگه حواس پرت بشه و تمرکزت خلاص دیگه گمتون کنم. آری. مامان، بابا، اتفاقا بعدین میفته. چون میدونم حتماً اگه فراموش کنم، بازم پیدات می‌کنم. O yakam be çabadas o hala birazdas o hala beşgun beşgun biha paim baro biade bokol hay baba tu deri çıkarmi goni mana divare bokol izi nakşatı makan ya bi takmil şut hala hatş men şu çıkarmakla şu şu de maşina şatomşli bi nam sagoyabi zelay maşinal maşina bat boysa bat trafik nabe خوری برو vay ek cin çare ne ka ceket aşık rihte yine ne ka ko dic haber baba ne midunam çe haber vali ye hisi dare be mi ge her şey az ye rabti dare be kori leha baba mina divuna şe çejuri umad inja dare می‌بینی نازت؟ آره منم همینطور ولی هرچی تلاش کردم شما از یادم نرفتی. در واقع دلم برای بقیه خانواده‌ام تنگ شده. تو خانواده‌تی؟ بله. میدونی چه حسی داره؟ بله. الان خوب می‌دونم چه حسی داره. آخ. آها بیا بیرون بپَرین بپَرین بیرون اینا چه خوراکی نیستن. هی و اینا البته اون رو می‌رفتی؟ شکمو. یوری ترافیک بردرفشو الان <متحن> ردیف بشمی کنم رو بکی بکی بیا اینجا ما کمک م... بکی زود باشین بپرین تو زست دوری که دوری, دوری, دوری جا موند بکی بکی برگرد دوری جا موند نگم برگرد دوری جا مونده برگرد رو رو رو رو رو ما رو, رو, رو. نخورین دوری کجاست زود باش بگو جنی؟ مارلی؟ چالی؟ نیما؟ شما ممنونی که از دکترم براقبت شدید دوری، دوری هنوز تو دو کامیونه بکی خواهش میخونام بارا تو کامیون بارا دوری رو بیار را دوری خب دوری، فکر کنم وقت خداحافظی شده بخشی جنابالین نمیره کلیولند با من برمیگردی آقیان تو ده. چی باره که نقشه من رو به هم میرسی ببین چی میگم تنها یه هدف تو زندگیم دار تو ببین من چی میگم برسن. اصلا نقشه کشیدن یعنی چی؟ من هیچوقت نقشه نکشیدم نقشه کشیدم گمشم نه نقشه کشیدم مالین رو پیدا کنم نه ما با نقشه هم دیگر رو دیدیم <سؤال> نقشه کشیده بودی؟ حرفات تموم شد. هیچ‌وقت ما نه کشیده بودیم. بهترین اتفاقات همیشه شانسی می‌افتند. خب زندگی این جوریه. الانم تو میای با من میرین تو اقیانوس. نمیذارم خودت تو چوب شیشه ای هفت سونی. من یه چیزی بگم. آخی حرفم تموم نشده. یه دوستی دارم به اسم رویای تیموریان همیشه میگه سه قدم ساده باید برداری. نجات بدین، درمان کنین و بعد یه کار دیگه که چی؟ آزاد, آزاد، آزاد. آره همین. <سؤال> خو دستارین چی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی همون آوارا فوت کُنَم چردم خواستم بگم بات میام نابود شدیم هی بابا کو میورم آی کنون میون برداش اوه می خطر واو گونه اوه ولی زبینو قفله رجا داری تو میدونی دستینی دستینی دیوار دیوار دور بز دور بز او دیگه چخاوک میسرمون شد. بیلی کجا رفت؟ کامیون رفت پارادین شد. دوری، وارم انتامو؟ نه نه، تموم نیستم، اون نیست. هیچ راهی هست؟ ولی مادر فرام گوش کن، دیگه هیچ راهی برای بیرون رفتن نیست. باید یه راهی باشه، همیشه یه راه دیگه هست. نه دوری نیست، خودت ببین این بار هیچ راه دیگه‌ای نیست. او اوتوبوس جاده بزرگوار یه راه است نفسانی به درد وخی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آداد... سلام این دیگه چی؟ اوه بهت اگه گهی سن گهی سن یعنی چی شو؟ شرمنده ولی بفرمایید گم شید. اخره خب هنگ تو هفت تا بازو داری ببینم چیکار می‌کنی یا خودت نشون بده. تماشا کن. لا لا بس کو تش کو بای بای او خدایین अरे هر راه تو دیوانه شو هر کاری کنه بای کجا منی من تو رانندگی دخالت کنم و چون خودم بلد نیستم حق ندارم ولی میشه یک افسری در بری باش چون ما داد استاد که راه اینه بای همه زندگی بادبختی من زندگیم افتاد دست تو من نمیبینم خودو بری برم همین ماشینا داره میره چطوری دیگه خیابون گیلمان؟ جدای عشبی؟ افا پاسم خیابون گیلمان خیلی بز خرست اینجا چه تا خیابون گیلمان داره؟ چفکی شدم چقدر دیگه من دارم چف تا این دشت برو اول بد بفهمم چجوری اومدیم تو این مسئل بر میگم چجوری ازش بریم بیرون خب هر وقت فهمیدی برین بگو ولی یادم نیست چجوری اومدیم تو این مسئل من او آداما رو میشتوستم تستاسون من اومدیم به پیش برم باید عجابه ایفونیه همچنه مستقی؟ مستقی برو چپ چپ این دانه راست از با آمان کی جم کردی باز؟ لابده گید آمان باورا میره که بگو آقا باشه چشمه؟ وای چهداهی میشه از کدوم برم؟ آخی روز کدوم بره؟ خیلی خواهیه بده شو بخون بی از خایی قدران خیلی خواهیه آلا کدوم بری؟ خایی خواهیه که بیره آقای آنوز برن؟ به دادم برسه ایس نشونهی ای نمیبینم خوش یه چیزی میدیدم برغای دریایی هنگ و پرنده ها رو دنبال کن تران میرد شب وای وای, وای خواهید به سرم وای وای سب بکنین یه چی دایی میبینم خودشون هم؟ فلشون خوبه یا نه؟ آجان کرده دنبالشون بدبخش شده رفت افرین فسر خود پیش میریم آقیان رو سه اونجا از کسشو میگی باشه هرچی شد ب اوخه اوخه شوشا برچی اوخه اوخه میکنی داری بود چجوری بود داری بود چجوری بود داری بود چجوری بود هنگ باید یه خود دیوون بازی در بیاری اصلا تا الان آقل بازی در میوردیم پس پایی قلط کردم اوو دیگه رای نمانده میرن زندن آب نمک بخورن اوو نه اوو بایزا بایزا اوو فرار کنید برید کنار درسه زندگی آبی شاهد مراحل پیش از آزادسازی گونه های دریایی بودید شعار ما نجات، درمان و آزاد کردن از این که با من وقت گذراندید بی نهایت سپاس گذارم ده؟ نه؟ چه هل سو پان چه حال امم واسهم چیزی ندارم میشورم چه حیسکی نیست اه اخی اه، یعنی یعنی منو بردردن خب نه معلومه که نه هم چیکاری نمی کردن خلا خوب بذار تمرکز کنم من داشتم چیکار میکردم داشتم صورتمو پوشونده بودم یعنی میخواستم قایم شم خب من چرا میخواستم قایم شم وایسا نما خب باشه باشه بازی باشه دیگه پیدا نگا. رامین آبادی باشی میخام درس جدیدو شروع کنم من دستسازم خوشم نمیاد. آخه این رکیه با اجلتش برمیگردم. شما این فکو بسته نگاه دارون اگه باوش بشه دیگه هیچ وقت برن نمیگردم بهتون. درس با چاکی میخواد بدونیم ما کاریابی این کی کاسکیه؟ پیش نمیخادم. خب دیگه شو پولی مو پولی بابا خوش بگذره. بریم یه کمی <تصفح> شنا <تصفح> کنیم. <تصفح> باشه. <تصفح> خداfez، زدی میای؟ خوب، منم برم با... خونه رو خرد و یه خورده جارو پارو کنم و کارهای عقب مونده خونه رو انجام بدم. تو نمیای؟ چی؟ نه، می خوام برم لبه‌ی پارکگاه. آره، اینم فکر قشنگه. چی؟ دوری، الان که فکر می‌کنی می‌بینن فکر قشنگگی نیست. به نظر تو قشنگه؟ آره، فقط می‌خوام برم منظره تماشا کنم. خداfez. چه خوب. آ پس با واسه خودت باش. لاقل تنها نمی‌رفتی. برم منم. می‌خوای بیام؟ بیام. Dupra gom nashë, dupra gom nashë Dori, dori, dori Salaam bari jan Salaam dari jan Khubi, ingar në qarani نه نه نه نگران چیه من قیافم اینجوریه چی شده؟ ای چی فقط باورش <تصفيق> تو موفق شدی آفلی موفق شدی شو پولی با پولی آره یعنی چی؟ عزیزم تونستی با دنبال کردن صدفا برگردی خونه بس <تصفيق> میکنی موفق شدم خدا اونو؟ دقیقا. میدونی یعنی چی عزیزم؟ یعنی هر کاری دلت بخواد و فکرشو بکنی می‌تونی انجام بدی. واقعا؟ بابا میشه منم بازم بازی کنم؟ آه. آره. آره که می‌تونی شو پولی و پولی بابا. مشو می‌گذره. آره. معاف سرش فوق العاده است. آره. فراموش نشدنیه. صرف فارسی صدا بازیگران محمد رضا علی مردانی نازنین حقیقی صدا بازیگران سلیمه قطبی نیما رئیسی همانه حاجی عبداللایی مجید آقا کریمی نازنین حقیقی محمد رضا علی مردانی رضسانا گلزاده سعید شریف اعظم حبیبی محسید اجدفه شیوا ایوبی محمد مهدی قاسمی صدا بردار سید حسام الدین طباطبایی و با حضور افتخاری بانو رویا تیموریان سوری گیدا او پس ما تیم براپو ایندینگ براپا ارا برا اچھا مو افاق شدیم عالی بود پوبرم نمیشه بالاخره رسیدیم راحت شدیم اینجا کسی کاری به کارمون نداره استن به طبیعت فرنمساران